ورود حسین علیه السلام به مکه و پاسخ او به نصایح سران قوم راویان حدیث نقل کردند پس از گفتگوی ولید و مروان با امام حسین علیه السلام فردای آن شب که روز بیست و هفت رجب سال شست هجری بود حسین علیه السلام با همراهان خود به سوی مکه حرکت نمودند و در روز سوم شعبان سال شست هجری به مکه رسیدند امام حسین علیه السلام بقیه ماه شعبان و ماه رمضان و شوال و عده و تا هشتم زی حجه چهار ماه و پنج روز در مکه ماندند در این هنگام در میان افراد گوناگونی که با امام حسین علیه السلام ملاقات کرده و گفتگو می کردند عبدالله ابن عباس رزوان خدا بر او پسر اموی پیام بر صلی اللہ علیه و آلهی وسلم و علی علیه السلام و عبد الله ابن زبیر نزد امام حسین علیه السلام آمدند و از آن حضرت خواستند که از سفر به عراق خودداری کند امام حسین علیه السلام فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مرا به این کار امر فرموده است و من آن را انجام خواهم داد عبد الله ابن عباس از نزد امام حسین علیه السلام خارج شد در حالی که از روی دلسوزی نسبت به امام صدا میزد وا حسینا آه حسین جان سپس عبدالله ابن عمر به محضر امام حسین علیه السلام آمد و به امام علیه السلام عرض کرد با سران گمراه صلح کند و خود را از جنگ و خونریزی دور نگه دارد امام حسین علیه السلام به او فرمود ای ابو عبدالرحمن آیا توجه نداری که دنیا در نزد خدا به قدری پسته است که سر بریده یحیی نزکری یا به خاطر نحی از منکر به عنوان هدیه نزد تاغوت پلیدی از پلیدهای بنی اسرائیل فرستاده شد؟ آیا نمیدانی که بنی اسرائیل در فاصله کوتاه بین طلوع صبح و طلوع آفتاب هفتاد پیام بر را کشدند سپس به طور عادی به بازارهای خود رفتند و به خرید و فروش مشغول شدند گویی هیچ کاری انجام ندادند؟ خداوند در عذاب رسانی به آنها شتاب نکرد بلکه مدتی به آنها مهلت داد سپس آنان را با انتقام سخت در چمبره عذاب در خود افکند. ای ابو عبد رحمان، از خدا بترس و دست از یاری من بر مدار. <تصفيق> پیام های مردم کوفه به امام حسین علیه السلام مردم کوفه از ورود امام حسین علیه السلام به مکه معظمه و خودداری او از بیعت بایزید با خبر شدند در خانه سلیمان ابن سرد خزائی اجتماع کردند وقتی که جمعیت کامل شد سلیمان در حضور آنها سخنرانی کرد و در قسمت آخر سخنانش چنین گفت ای شیعان شما میدانید که ماوی از دنیا رفت و به نزد پروردگارش شتافت و به سزای کردارش رسید. اکنون پسرش یزید به جای او نشسته و حسین ابن علی علیه السلام با او به مخالفت برخواسته و برای نجات از گزند تاغوتهای خاندان ابو سفیان گریزان به مکه آمده است. شما شیعه حسین علیه السلام هستید و شیعه پدرش علی علیه السلام از قبل بودید. امروز امام حسین علیه السلام نیاز به یاری شما دارد اگر میدانید و اطمینان دارید که او را یاری میکنید و با دشمنانش میجنگید پشتیبانی خود را با ارسال نامه ها به اطلاع او برسانید و اگر ترس سستی و بیهمتی دارید و انجام وظیفه در این راه را در وجود خود نمیبینید آن بزرگوار را فریب ندهید حاضران پس از این سخنرانی برای امام حسین علیه السلام چنین نامه نوشتند به نام خداوند بخشنده مهربان به سوی حسین پسر علی امیر مؤمنان علیه السلام از جانب سلیمان ابن سرد خزائی مصیب ابن نجبه رفاعه ابن شداد حبیب ابن مظاهر عبد الله ابن وائل و سایر شیعیان از مؤمنان سلام بر تو اما بعد همد و سپاس خداوندی را که دشمن تو و دشمن پیشین پدرت معاویه را در هم است همان دشمن جبار و پرکینه جاهل و ستمگری که شؤون رهبری این امت را قصب کرد و اموال مردم را چپاول نمود و با زور و قلدری بدون رضایت مردم بر آنها سلطنت کرد سپس نیکان مردم را کشت و بدن را باقی گذاشت و مال خدا را دست به دست در چنگال ستمگران و متجاوزان قرار داد از رحمت خدا دور باد همان گونه که قوم سمود از رحمت خدا دور شدند اینک ارزما این است که ما امام و رحمری جز تو نداریم به سوی ما بیا شاید خداوند به وسیله تو اجتماع ما را بر اساس حق به گرد هم آورد نعمان ابن بشیر حاکم کوفه در قصر فرمانداری به سر برد. ما نزد او اجتماع نمی کنیم و در نماز جمعه و جماعت او شرکت نمی و همراه او برای نماز عید حرکت نمی کنیم اگر خبر حرکت تو به سوی ما برسد ما نعمان را از کوفه اخراج می کنیم تا به سوی شام برود سلام و رحمت و برکات خدا بر توی پسر رسول خدا و بر پدرت که قبل از تو بود و حول و قوتی جز از ناهوی انایت خدای علی اعلا نیست آنگاه این نامه را به محضر امام حسین علیه السلام فرستادند نامه بسیار تا دوازده هزار نامه دو روز بعد از فرستادن نامه جماعتی که حامل صد و پنجاه نامه که آن نامها هر کدام به امضای یک نفر، دو نفر، سه نفر و چهار نفر بود و همگی از امام حسین علیه السلام تقاضای تشریف فرمایی به کوفران را نموده بودند به سوی مکه سپار شدند و نامه ها را به امام حسین علیه السلام دادند امام علیه السلام در این حال از پاسخ دادن به نامه ها خودداری می کرد تا اینکه در یک روز 600 نامه به آن حضرت رسید نامه ها پی در پی می رسید که تعداد مجموع آنها دوازده هزار نامه گردید آخرین نامه به امام حسین علیه السلام و تصمیم آن حضرت پس از فرستادن نامه های فوق دو نفر به نامهای های حانی ابن حانی سبیعی سعید ابن عبدالله حنفی از کوف رهسپار مکه شدند و نامه ایرا که آخرین نامه کوفیان به امام حسین علیه السلام بود به آن حضرت تقدیم کردند در آن نامه چنین آمده بود به سوی حسین ابن علی امیر مؤمنان علیه السلام از طرف شیعیان او و شیعیان پدرش اما بعد همان مردم در انتظار ورود شما بسر میبرند آنها رأی جز رأی تو را ندارند ای پسر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به سوی ما شتاب کن و در حرکت به سوی کوفه بشتاب که باغها سرسبز و میوه ها و درختان به سمر رسیده بوستانها و گیاهان خرم و پربرگ شده است اگر سلاح میدانید تشریف بیاورید که لشکلی مجهز مجهز برای استقبال از ورود شما آماده شدند سلام و رحمت و برکات خدا بر تو و بر پدرت که قبل از تو بود امام حسین علیه السلام به آورندگان نامه هانی و سعید فرمود به من خبر دهید که چه اشخاصی در نوشتن این نامه با شما هم دست دودند آنها جواب دادند ای فرزند رسول خدا افرادی مانند شبس ابن ربعی حجار ابن ابهر یزید ابن حارث یزید ابن رویم و ابن غیز عمر ابن حجاج، محمد ابن امير ابن عطارد که هر کدام از سلان قوم هستند با ما هم دست بودند. در این هنگام امام حسین علیه السلام برخاست و کنار کعبه رفت و دو رکعت نماز در بین رکن و مقام بین حجر الاسود و مقام ابراهیم خواند. سپس طلب خیر از خدا کرد. آنگاه مسلم ابن عقیل علیه السلام را به حضور طلبی تا او را روانه کنفه